خصل ده هم. شیگه روز بعد هم یاد داشت های بمبارانه تومی را رو نویزید. خاطرات از بعد از ظهر روز هشتم اوت به بعد بود تا برگشتم به کارخانه در راه جملات هاکوتسو را از حفظ میخاندم اما آموزه های آن جملات به دلم ننشست و تصویر شعله های آتش در بدن تخیلی به نظرم میرسید به کفشکن دفتر که رسیدم، تازه متوجه شدم خیس عرقم. وقتی به دفتر طبقه همکف وارد شدم، هیچ کس نبود. به اتاق رئیس کارخانه رفتم. زن آشپز، ساکیکانه، که کاری آشپزخانه بود، روی صندلی رو به اتاق رئیس نشسته بود. آه، آقای شیزو خسته هستید. آقای رئیس وقتی گزارشم را درباره مشایعت جسد برای سوزاندن شنید، گفت بمباران شده ای به نام ماساداتاکا مرده است که آشپستاکی کانه از او مراقبت می کرد. لطفاً برایش سوت را بخوان. زنی به نام کا فروشندی بازار سیاهی بود که همیشه از هیروشیما صدف خوراکی و انواع ماهی ها را برای فروش به این آشپزخانه می آورد. او؟ در حمله هوایی دو روز قبل، صورت و دو دستش زخمی شده و امروز صبح برای درخواست از ساکیکانه خود را به اینجا رسانده بود. ساکیکانه و ماساداتاکا و خیش خونی نبودند، اما تاکا همیشه بسیار پایینتر از قیمت معمول بازار سیاه اجناس را به این آشپزخانه فروخت. من با توجه به توضیحات کانه، مشخصات تاکا را در دفترچه یادداشت ثبت کردم. چون قرار بود مراسم تدفین فردی خارج از شرکت را انجام دهیم نوشتن نام، نام خانوادگی، آدرس، وابستگان و کار آن شخص و نگه داشتن آن برای آینده ضروری به نظر می رسید. اما کانه مشخصات تاکا را خوب نمی دانست و آنچه او به یاد آورد نوشته ای ناقص به شکل زیر شد خاطراتی درباره مرحوم آدرس شهر هیروشیما، شهرک کاکا، خیابان کناری ایزدکده سامیاشی. سن 48 نه سال، قد یک متر و 53 سنتی متر، چاق و تندرست. حدود 4-5 تا از دندانهای پیشین بالا و پایین آریتی با روکش کرم بود. علت مرگ به علت بمباران سوخته بود. سورت و دو دستش سوخته، جزغاله شده و پوست دست چپش چپشکنده شده بود. در لحظه بمباران پارچه ضد حملات هوایی بر سر داشت. به همین خاطر موهای سرش نسوخته بود. زمانی که تاکا به این کارخانه رسید، حدود ساعت هشت صبح روز هشتم ماه اوت سال بیستم از دوری شوا بود. لرزان به آشپزخانه وارد شد و گفت، خانم کانه، آب! آب، آب، با این صدا کانه تاکا را شناخت و در لیوان آلومینیومی به او آب داد. از چهرهش مشخص نبود که کیست. تاکا وقتی آب را نوشید نفسش به شماره افتاد. صدایش هم که زدند هیچ جوابی نداد. کانه دستش را روی سینه تاکا گذاشت هنوز تبشه قلبش را کمی احساس میکند. ظاهرا تا حدود ساعت ده صبح نفس میکشید. خانواده تاکا با توجه به صحبت های تاکا در زمانی که برای فروش کالاهای بازار سیاه می آمد، شوهرش در جبهه منچوری مریض و کشته شده بود. تنها پسرش به جایی مانند مدرسه مخصوص وابسته به ارتش نزدیک شهرک یانایی در شهرستان یاماگوچی وارد شد. تاکا همیشه از توضیح درباره اینکه آنجا کجاست تفره میرفت. اما به نظر می‌رسید بودن پسرشان در آنجا تنها افتخار والدینش است دارایی تاکا که بعد از مرگش پرستار از درون لباس و لوازمش پیدا کرد در کیف پول چرمی که شبیه کیسه بود 9 اسکناس ده ینی 12 اسکناس پنج ینی 22 اسکناس یک ینی و در حدود سی و چهل و نه سن سکه وجود داشت. یک عدد دستمال و یک جاقلمی چرمی بدل هم بود. درون اون جاقلمی عکس شوهرش که لباس رسمی استواری نیروی زمینی را پوشیده و عکس پسرش با پیراهن نیماستین وجود داشت. اینها اظهارات مسئول آشپسخانه خانم ساکیکانه بودند. پول، بلیت اعتباری و دو قطعه عکس درون جا که متعلق به تاکا بودند در حضور رئیس کارخانه آقای فوجیتا، کانه مسئول آشپسخانه و شیزو ما در گاو صندوق دفتر رئیس کارخانه به امانت گذاشته شد. رئیس کارخانه در دفتر مشخصیات یادداشت کرد. مبلغ 175-1949 سن و غیره به امانت از مساداتاکا به آدرس شهر هیروشیما شهرک کاکو یاد داشته شیزو و شیگماتسوو احتمالاً احتمالا سرمایه بود که ماصددا برای خرید صدف خوراکی و انواع ماهی ها در بازار سیا فراهم کرده بود. شاید هم تمام دارایی تاکا بوده، بنابراین این درست بود پول را برای پسرش بفرستند. با این همه چون خانه تاکا در شهرک کاکا سوخته و از بین رفته بود، لازم بود با پسرش در نزدیک شهرک یانایی در یاماگوچی تماس گرفته شود. رئیس گفت: « بسیار خوب خانم آشپز. مدرسه نزدیک شهرک یانایی جایی نیست که در آن اجدر انسانی آموزش داده می شود، یکی از سازمن های سریع ارتش است سربازخانه آنجا چه نام دارد؟ آخه رئیس واقعا نامش را نمیدانم. خانه بابی اعتمادی این را گفت. خانم فروشنده صدف‌های خوراکی بازار سیاه فقط میگفت اسرار نظامی سری است یا جایی مثل مدرسه ویژه است. وقتی هم با قطار از آن اطراف رد می‌شدیم تمام پنجره‌ها را می‌بستند. حفاظت اطلاعات بسیار سختگیر است. علاوه بر این پنجره ی توالت قطار هم پایین کشیده می‌شود. مسئول آشپزخانه اینها را اضافه کرد. حفاظت اطلاعات فقط حفاظت از دیدن نیست این کار فقط ظاهری است و اساس ماجرا اینطور نیست. رئیس کارخانه با تفره رفتن به مسئول آشپزخانه چنین گفت به هر حال او پسر زن فروشنده صدفهای خوراکی بازار سیاه هست نه پسری که اجدر انسانی خواهد شد واقعیت دل به وظیفه دادن است اگر قرار باشد مادر چنان پسری در اینجا با مردن به بودا بدل شود، باید مراسم تدفین او با احترام برگزار شود. آقای شیزوما هم شمرده و با احترام سوت را تلاوت خواهند کرد. اینطور نیست خانم سراش واقعا همینطور است آقای رئیس. واقعا متشکرم. در مورد سوت را هم از آقای شیزوما تقاسا می کنم. احتمالا ساکیکانه بیش از همیشه نسبت به فروشنده صدف‌های خوراکی بازار بازارسیا احساس محبت کرد علاوه بر اینکه از من درخواست تلاوت را کرد با افتخار گفت هنگام وارد شدن پسر آن فروشنده به جایی مانند مدرسه ی یانائی در پارچه سنین باری سوزن زده است همچنین گفت جهت دعا برای تداوم شانس خوب در جنگ زیر تمسال خورشید پرچم به شکل محققرانه ای ساکی کانه نوشته است. بدنم به شکل چسبناکی عرق کرده بود. وقتی شنیدم مقدمات تدفین فراهم شده برای امانت گرفتن کت رسمی کارگر به خوابگاه رفتم. مرده روی تخته به پشت خوابانده شده و صورت و دست و پایش در پارچه پیچیده شده بود. گلویم گرفته بود و نمی روان تلاوت کنم. شاید به دلیل آفتاب سوزان و ننوشیدن آب بود امکان داشت این حالت به سبب خواندن سوترا آن هم بلا فاصله بعد از شنیدن گذشته متوفا هم باشد شاید هم به این علت بود که زن در گذشته در زندگی دنیاوی پسرش را از رفتن به مدرسه اجدر انسانی منصرف نکرد. شاید جنگ قدرت تصمیم را مختر کرده بود تلاوت هم از اول تا آخر سانگیکای با صدایی تحلیل رفته و در جملات اکوتسو با صدای چون گریه پشه بود با این همه ساکیکانه که صاحب اصلی عذاب بود انگام دور شدنم از جسد با نهایت احساسات گفت آقای شیزوما متشکرم. به دستشویی رفتم آب نوشیدم و با دستمالی خیس بدنم را پاک کردم نتوانستم گونه چپم را که به خاطر سوختگی با پارچه پوشانده شده بود پاک کنم. احساس کردم پارچه کاملا به زخم چسبیده. بعد از زخمی شدن کمترین دردی احساس نمی کردم. پس پارچه را به همان حال گذاشته بودم. به خاطر تعرق زیاد فکر کردم باید دوباره پانسمانش کنم. پس جعبه کمک های اولیه را برداشتم و جلوی آینه دستشویی ایستادم دادم. چسبی که پارچه را نگه داشته بود کندم. ابروی سوخته مانند کیک سوخته بود و درست شبیه جای سوختن نخ پنبه شده بود. گونه چپ رنگ ارقوانی با هاشیهی سیاه پیدا کرده بود. پوست سوخته روی هم قرار گرفته، چسبیده و حالت چند لایه گرفته بود. کنار سوراخ سمت چپ بینی چرک کرده و از زیر چرک سفت شده چرک های تازه بیرون زده بود. این صورت من بود وقتی به نیمه چپ آن نگاه می کردم، به تدریج قلبم به تپش می و کم کم آن را نمی دیدم. یک گوشه پوست جمع شده را با ناخون گرفتم و آرام کشیدم کمی که درد گرفت فهمیدم صورت خودم است با این گمان لاین آن را کندم چیزی مانند کشیدن دندانهای ل. ورز دادن درد و لذت ناشی از درد بود تقریبا همه پوست های جمع شده را کندم چرک سفت شده ی کنار بینی را با سر ناخن گرفتم و فشار دادم که از بالا کنده شد و چرک زردی بر ساعدم ریخت نفهمیدم چرک بیشتر شده یا اینکه بهبود یافته به هر هر قسمت چرکین و بخش زخمی را با آب شستم و تمیز کردم قسمت چرکین را با پودر دارویی خانگی آغشته کردم تمام گونه چپم را با پارچه‌ای پوشاندم و با چسب محکم کردم آن پودر دارویی ترکیبی از برگ تره فرنگی بود که درست کردنش را از نجاری در زادگاهم آموخته بودم نجار گفته بود برای بریدگی و چرک داروی فوق العاده موثر است نزدیک ظهر شد برای نهار خوردم به خانه اجاره ای من برگشتم. هنگام بالا رفتن از سراشیبی درد پایم چنان شدید شد که لنگ لنگان گام برمی داشتم. در پیچ سراشیبی وقتی به بالا نگاه کردم همسرم شیگه را دیدم که از بالا نگاه می کرد. لنگ میزنی درد دارد؟ می خواهی چوبی چیزی دستت بگیری و راه بروی؟ شیگه کوین این را گفت و نیزه خیزرانی آورد که برای تمرین در جنگ تن به تن مورد استفاده قرار می گرفت. به نظر می‌رسید رسید خیزرانی است که قبلاً همسر صاحبخانه ساخته بود. فکر کردم کشاورز شورشی سرکوب شده ای هستم. در حالی که نیزه خیزرانی را گرفته بودم شیگه کو هم یک شانه هم را گرفت تا از سر سربالایی بالا آمدم. آن زمان برای اولین بار متوجه شدم موهای سر شیگکو سوخته سوخت است. کی موهایت سوختند؟ وقتی پرسیدم جواب در حمله هوایی روز ششم سوختند. نهار شامل برنج برشتهی بود که همراه داشتیم. با سوپ میسو که از تفت دادن سبزی در روغن کانالا به دست می آمد. چای هم از قنچه های گیلاس بود. این بالاترین تنوع غذایی خانه ما بود. با توجه به حرف‌های شیگکو، خودش هم امروز صبح متوجه شده بود که موهای سرش سوخته است. صبح روز ششم با اینکه آژیر پایان وضعیت خطر حمله هوایی به صدا درآمد، صدای انفجار شنیده شد. بنابر این شیگکو از پنجره آشپزخانه به آسمان نگاه کرد. همان لحظه ناگهان نوری بسیار قوی رادی زمانی به خودش آمد که میان الوارها افتاده بود احتمالاً با نور همان لحظه موهایش سوخته بود. بعد از مدتی بلند شد به آشپزخانه نگاه کرد همه چیز به هم ریخته بود. وقتی به پشت خانه رفت و نگاه کرد دید دیوار آجوری هم فرو ریخته ظاهرا همه جا هم آتش بلند شده بود. با این فکر که اینها دیگر نامعمول هستند برای بازدید به طبقه دوم رفت. شیشه ها پریده و فوسوم ها خمیده شده بود. نوک درخت کاج حیات و ترانسفورماتور تیر چوبی برق سوختند. از سمت شهرداری دودی مهیب بلند شده بود. همه جا دود بلند بود. مسیری که آتش در آنجلو می‌آمد دیده می‌شد. فکر کرد باید فرار کند. قبل از هر چیز به ستونی نگاه کرد که کیسه ی کوچک حاوی تلسم خدایان و اجداد به آن آویزان بود. اما چیزی نبود. به ستون بعدی هم نگاه کرد اما باز چیزی نبود چارهای نبود شروع کرد به انجام کارهای دیگر برای غرخ کردن ظروف قضا وسایل خواب پشه بند کفش و غیره در چشمه آنها را به حیات آورد به سطح آب که نگاه کرد دید کیسه کوچک حاوی تلسم خدایان و اجداد روی آن شناور است بیشک با موج انفجار از خانه به بیرون پرد شده بود برش داشت و توی بخچه بسته به پشتش گذاشت وسایل را یکی یکی داخل چشمه انداخت و تکههایی از هایی را روی آنها انداخت که جلو در پناهگاه و داخل آن هم ریخته شده بود. بعد از خانه آقای نیتا همسایه کناری فریاد کمک را شنید. به خانه آقای نیتا رفت. آقای نیتا بر پهلو و خانمش روی صورت زخم عمیق داشتند. بنابر این پارچه سنین سن باری را پاره کرد و زخم آنها را بست. بعد برای برداشتن برانکارد رفت و وقتی برمیگشت همسر آقای نوورا که زخمی عمیق داشت تقاضای کمک کرد برانکارد را همانجا رها و با دستمال زخم او را پانسمانی فوری کرد زخمی ها تنها اینها نبودند متوجه شد آقای ناکانیشی، آقای هایامی، آقای سوگایی، آقای ناکامورا و سایر همسایه ها همگی کم یا زیاد زخمی شده فقط خودش بود که بدون هیچ زخمی این طرف و آن طرف میدوید استفاده از برانکار تقریبا ناممکن بود مدتی که گذشت شوهر خانم نورا که افسر گروهان مخابرات بود همراه چند سرباز آمدند و همسرش را بردند آقا و خانم نیتا هم گفتند که به بیمارستان خیریه میروند آنها خونالود و پر از درد با کمک هم رفتند شیگکو به خانه برگشت مقدار کمی از وسایل خانه را به پناهگاه برد و بعد از آن زمین ورزش دانشگاه فرار کرد. در صحبت‌های شیگکو چیزهایی بود که چه از دید فیزیکی، چه از دید عقلی، و هر جور دیدی غیرقابل درک بود. در خانه ما موج انفجار از شمال به جنوب حرکت کرده بود. درخت درون حیات خود ساختمان خانه و متعلقات آن به سمت جنوب یا جنوب غربی حرکت کرده بودند. فقط کیسه کوچک حاوی تلسم خدایان و اجداد از جنوب به شمال، حدود هشت متر در داخل خانه و پنج متر بیرون خانه پرت شده و به چشم افتاده و بر سطح آب آن شناور شده بود. به هر حال چیزی خلاف معمول بود، اما توضیحی هم وجود داشت. کیسه پارچه ای کوچک که از داخل اتاق به سمت جنوب یا جنوب غربی پرت شده بود، شاید به دلیل فشار اکسل عمل به سمت شمال و شمال غربی برگشته بود روز نهم ماه اوت قضایی که همراه آورده بودیم تا شام دیروز کافی بود و تمام شد از امروز قرار شد غذامان را از قضاخوری شرکت تحویل بگیریم صبحانه را شیگکو و نهار را یسوکو گرفتند و آوردند اما هنگام نهار شروع به شکایت کرد حرفشان این بود که حتی اگر غذاشان برنج و سبزی بود باز هم غذایی را میگرفتند که دیگران پخته بودند بنابراین خوردن آن بدون انجام هیچ کاری برایشان سخت بود دیروز به مراقبت از زخمی ها کمک کردند اما امروز کاری برای انجام دادن نداشتند پس خجالت میکشیدند برای گرفتن غذا بروند امروز رئیس کارخانه به یاسوکو گفته بود در حال حاضر بهتر است استراحت کند ناراحت شد و به آنها پیشنهادی دادم فردا دو نفری به بقایای سوخته خانهمان در شهرک سیندا بروید اوضاع محل را دقیق بررسی کنید و سرآخر از داخل پناهگاه لباسهای قابل پوشیدن و بطریهای شیشه‌ای پر شده با برنج را بیاورید آن برنج را برای مواقع ضروری کنار گذاشته بودیم پس حالا باید در چنین روزهایی از آن استفاده می‌کردیم انگار هر دو خیالشان راحت شده باشد برای گرفتن شام شب رفتند داخل پناهگاه ضد حملات هوایی خانهمان در شهرک سندا رادیو پتوی نخی ظروف غذاخوری ظروف آشپزی و غذا گذاشته بودیم در قسمت باز حیات چهار بطریه یک هشت دهم لیتری برنج قوطی حلبی به حجم 18 لیتر سویا و قوطی حلبی دیگری حاوی زیرپوش و یکاتا و سایر البسه را داخل خاک پنهان کرده بودیم هنگام فرار و بین راه به آنها سرزدم نسوخته بودند شیگکو و یاسوکو فقط یک لباس برای پوشیدن داشتند آهسته مشفرت می کردند که اگر لباس و لباس زیرشان را بشویند تا خشک شدنشان چه بکنند؟ وقتی به آنها یاد دادم که به ساحل رودخانه بروند، لخت شوند لباسهایشان را بشویند و تا زمان خشک شدن لباس داخل آب بمانند حوله را را برداشتن درفتند احتمالا به علت تنها شدن گرما را به شدت احساس کردم نشسته بودم که خواب شدم و حواسم کم شد اما وقتی دراز کشیدم و چشمهایم را بستم دودهای بیشماری به ذهنم آمد که از ساحل رودخانه و کوه بلند بود نتوانستم بخوابم چه بلند می شدم و چه به پهلو دراز می کشیدم، باز هم زیاد عرق می کردم. فقط می توانستم عرق سمت راست صورتم را پاک کنم در سمت چپ علاوه بر احساسی مانند لمس حوله بخار گرفته آرایشگاه حس می کردم زیر پارچه روی صورتم عرق قلیز چسبنده یا چرک جمع شده است ای نداشتم جز اینکه پارچه پانسمان را به نرمی فشار دهم تا آن عرق یا چرک را جذب کند چند بار که فشارش دادم پارچه نمدار شد هرچند بهتر بود پارچه پانسمان را عوض کنم اما پارچه دیگری نداشتم تصمیم گرفتم پارچه سگوش را به اندازه صورت ببرم آن را با آب جوش بشویم و در نور خورشید خشک کنم وقتی به ستون کناری تکیه دادم تا استراحت کنم یکی از افراد شرکت به نام تاناکا آمد و گفت سربازها برای گرفتن آزوقه آمدند آزوغه را به آنها دادم برهار چاری نداشتی که ای دادی؟ یک ساعت قبل، سربازان کجا آمدند؟ آزوغه رو کجا بردند؟ پاسخ داد، سرباز پیاده نظام بودند. فکر کردم از واحد نظامی شماره دو غربی آمدند، پس آزوغه را دادم. این آزوغه را گروهان مخابرات و واحد نظامی شماره دو غربی پیش ما امانت گذاشته بودند. حدود دو هفته پیش، سروان سر رشته از گروهان مخابرات که خانهاش روبروی خانه ما در شهرک سیندا بود نفس زنان به خانه هم آمد گفت می‌خواهد آذوقه گروهان را نزد من امانت بگذارد وقتی دلیلش را پرسیدم جواب داد از ستاد فرماندهی تلفن کردند. اوضا به است که نمیدانند هیروشیما کی بمباران هوایی خواهد شد بنابراین برای حفظ تدارکات نظامی دستور دادند ان بیدرنگ آنها را پراکنده کنیم. سروان اورا که تحت امر بود خارج از سربازخانه جایی را نمی شناخت. بنابراین برای کمک پیش من آمد به کارخانه زنگ زدم علاوه بر دریافت اجازه ای آقای فوجیتار رئیس کارخانه آزووقه را همان شب به انبار کارخانه حمل و به امانت آنجا انبار کردیم. صبح روز بعد لطفا دوم ککوبون از واحد نظامی شماره دو غربی به ملاقات هم آمد و گفت گفت:میخواهیم آزوق ارتش را پراکنده سازمان دهیم. لطفا آنها را در انبار شرکت امانت نگاه دارید. موقعیت اضطراری بود و جایی هم برای پراکنده سازی نداشتند. سرانجام با تلفن از سروان او وضعیت گروهان مخابرات را پرسیدم که گفت برای سر زدن میآید. با شرکت صحبت کردم که باز هم قبول کردند. حجم آن زیاد بود و نمی توانستیم همه را انبار کنیم. یک قسمت از آن گونی های برنج را با درخواست من، از یک فروشنده ی تاتامی به نام تاوچی پیش او به امانت گذاشتیم بقیه آن را هم در انبار شرکت گذاشتیم که همان برنجی بود که برای پس گرفتنش آمده بودند مشکلی بود که نمیتوانستم تحلیلش کنم اگر ساتوان دوم کوکوبون زخمی هم شده بود واحد نظامی شماره دو برای تحویل آزوغه ها باید معرفی نامه یا نوشته از ساتوان دوم کوکوبون می آورد نمیخواستم باور کنم که آن اقدام به کلاهبرداری در وضعیت هر هرچو مرج پیش آمده اکنون هر چیزی هم می‌گفتم ای نداشت. باید خیلی دقت کنی. از این به بعد همانطور که آن زمان گفته شد، آزوغه را جز به خود سوتوان دوم کوکوبون یا جانشین او یا کسی که امضای او را دارد، به هیچ وجه به کس دیگری تحویل نمیدهی. میخواهم قول و قرار زمان تحویل گرفتن آنها را رعایت کنی. این حرف ها را با جدیت به آقای تاناکا گفتم. خوشبختانه کار انبار آذوقه گروهان مخابرات به عهده ما نبود. آنها قبلا در طبقه دوم دو ساختمان اداری شرکت، اتاقی به وسعت 6 تاتامی را دفتر حسابرسیشان قرار داده بودند. به انبار شرکت سر زدم و نگاه کردم. به همان تعداد که آقای تاناکا گفت کم شده بود. بعد از افتادن بمب در هیروشیما، آیا جامعه دچار بینصی و هرج و مرج شده بود؟ از قدیم گفتند در جایی که ویرانی عظیم جنگ اتفاق بیفتد تا صد سال بعد شرارت و بدی از بین نمی روید. این حرفی است که زمانی از کسی شنیدم. شاید هم درست باشه